بسم الله الرحمن الرحیم خدا را شکر رسیبیم تقریبا به بحث های آخر دیگه کتاب اعراب جمل اعراب جمله ها ما تا اینجا اعراب کلمات تکی رو توضیح میدادیم در این درس اعراب جمله ها رو میگه چون بعضی از جمله اعراب ندارند ها؟ و بعدی از جمله ها اعراب دارند این بحثو در دو موضوع میاره یکی اون جمله هایی که محلی از اعراب دارند درس بعدیش میاره اون جمله هایی که محلی از اعراب ندارند چه گفته با محلی از اعراب بخاطرم که اعرابشون محلی هست اعراب جمله است، تون چون محلیه لذا ميجيء إعرابي محلي زي رابنا دارن، أما درس عبال قسمة عبال الجمل التي لها محل من الإعراب، جمله هاي <تصفيق> الحمد لله، محلي زي راب دارن يرحمكم الله. کا خ فیله از ظرت راهحت ها ذکی از زهرت مبتدا مفه بامه راهحت ها ذکی مبتدا مرفو بامه ها مزاف ایعله ذکیتون خبر راهحت ها. حالا خبر از زهرت پس کجا موقعی که از مبتدا هست میگیم کل جمله ا... رائحتو ها زکیتون میشه خبر از زهرتو اینجا خبر یه شد جمله شد یک چی؟ جمله اینجاست که میگیم جمله رائحتو ها محل محلی از داره خبره محلن مرفوعه خبر جز بود؟ بله پس منظور از این که جمله ای دارن دیگه متوجه شدید بریم جلوتر. قال الم اني نیبری اینجا اني اون یک جمله است خودش ان حرف قال ترکیب کلیم از ابتدا فعل ماضی مبی بر فتح الموم فاعل بر تو بازمه اننیبری اون خب اني ان از حروف مشببه یا متکعلم اسمش هست محلا منصوب بری اون خبرش هست. متهم گفت چی گفت؟ من بیزار هستم این جمله من بیزار هستم میشه مفعوله؟ بهی همین جمله میشه چی؟ قول ما قوله دیگه الان میاره خب قدیمت طیار آمد طیار خلبان و هو مستبشر در حالی که او؟ بله این جمله هو مستبشر خودش یک جمله اسمی هست هوا مبتلا مستبشر شون خبرش هست ولی جمله حالیه لذا این جمله ایراب داره منصوب محلن محلی از ایراب داره خب شماره چار اقمنا حیثو طاب الهواء، الان تکرارشون نمی کنم چون تو قاعده دواره میگی گیم پنج اینو ظلمت فصوفتندم شش لنا دارون حدیقت و فصیحتون اتفلو یلهو و یلعب حفت جمله رو آورده که محلی از راب دارن بیاید در قاعده که این حفت نوع جمله چنوع جمله هایستن قاعده دویست و چلو چارون قاعده چندون باید یکونو للجمله محلو من الاعراب فی سرعتی مواضع می باشد برا جمله محلی از اعراب در هفت جا در هفت جا یک اذا کند خبرا زمانی که جمله خبر باشه مانند مثال اولی از زهرتو مبتدا هست رائهتو ها زکیتو جمله شامل مبتدا خبره همین جمله میشه چی؟ خبر پس یکی از جاهایی که جمله محلی زیراب زمانی که باشه؟ خبر باشه دو اذا کانت مفعولا بهی زمانی که مفعول بهی باشه مانند قال المتهمو اینی بری اون اینی بری اون یک جمله هست ولی این جمله بله مفعول بهی قرار داره مقول قول هست چی گفت؟ آ؟ گفت که من دیزار پس این من بیزار هسته مفعول به چی میشه؟ بله. پس دو بومین جایی که جمله محلی از ایراب داره مفعول به واقع میشه نخشش همون مقول القول مفعول به واقع میشه میتونه سه اذا کانت حالا زمانی که حال باشه محلی از ایراب داره معنند قدمت تیار و هو مستشر این جمله حالیه هست این وابو میگن واب حالیه چار بله، محالاً منصوبه, منصوبه, منصوبه, منصوبه. جمله. 4 اذا کانت مضافا اليها زمانی که جمله مضاف الیه باشه. مانند مثال چارم اقمنا حيث طاب الهواء. اگر یاد تو یاد قبلانا در مورد حیث گفتیم که همیشه مضاف به جمله هست خب موقعی که مضاف به جمله یعنی جمله به شکل کامل مضاف الیه دیگه. اون جمله میشه چی؟ جمله فعلیه ما طاب فعل و است. بعدش شکل تکی تابه فعله و هوا هم فاعله اما خود جمله اعراب داره محلی از اعراب داره مضافون اله هست محلن مجروف پنج اذا کانت جوابا لشرط جازمین زمانی که جمله جواب شرط جازم باشه ماگه اگه یا توی یا توی کتاب کنیم شرط جازم و غیره جازم مقترنتا بالفا او اضا ولی چه زمان اون جمله محلی زیراب داره؟ زمانی که فا یا اضا داشته باشه مقترنتا بالفا و اگر نباشه، مثلا انتن الله ها این جمله محلی زیراب نداره چرا چون این مقترنتا بالفا یا اضا نیست پس زمانی که جمله جواب شرط باشه شرط جازم و همراه بافایا اضافه شه مانند این مثال این ظلمتق فصوفتن تندمو. اینجه صوفتن تندمو. فعل بافایل دیگه فایلش انته مستطره این جمله محلی زیراب داره محلی زیراب داره چون همراه با چیه؟ بافای فصوفتن دمو ف سوف این مجزوم دیگه نگاه میکنیم بله اذا كانت شش مينجا اذا كانت میگیم در محله یا محله مجزون محله مجزون اذا کانت تابعة لمفردن زمانی که جمله تابع مفردی باشه معنیم ده مثاله لنا دارن حديقتها فسیحتون ببینید لنا دارن حديقتها فسیحتون این حديقتها فسیحتون تابعه چه تابع تابعه داره خب اگر اون مفرده مرفو بود این محلن مرفوه دیگه اگر مفرده منصوب بود این محلن چیه؟ منصوبه و اگر اون مجبور بود این چیه؟ مجروبه اینجا دارون مرفوه پس حدیقتها فسیحتون محلن میشه چی؟ مرفو دار بعد از نکره هست بعد از نکره جمله بیاد صفتش میشه و طابعشه خب اعراب جمله ها محلیه <تصفح> اما حفته جایی که جمله اعراب داره اذا کند تابعه تن لجمله لها محل من الاعراب زمانی کون جمله تابع جملهی باشه زمانی که جمله تابع جمله باشه و اون جمله قبلی از اعراب داشته باشه خودش محل اعراب داشته باشه مثلا معننده بیایید الطفل يلعب میگی ما الطفل مبتدا یلهو فعل مزاره فاعلش هو هست مستثنا فعل با فاعلش مشن خبر الطفل فعل با فاعل جمله خ... فعلیه هستن میشن خبر اینجا خبر ما جمله هست پس یلهو یک جمله است محل اعراب داره و ال الان یعنی الابو هم یک جمله چون یعنی الاب فیله به اضافه فائلش این جمله چون معطوفه به ای که اون جمله محلی از اعراب داره پس این جمله محلی از اعراب داره اعرابش چیه؟ همون اعرابی ایراب ایراب که جمله قبی داره بله متعجیشی سرورانه این درس ها خیلی ساده هستند اصلا نگران نباشید ما به تابحال تو اینا گیر داشتید